به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاطمه افشار این داستان تینان رام و دزدان از زمانهای خیلی دور دزدی کار زشت و ناپسند به حساب می‌آمد زیرا که حاصل کار و زندگی و دسترنج کسی رو به یکباره سرقت کردن نتیجه‌ی جز ویرانی و تباهی دربر نداشت و جامعه رو دوچار هرج و مرج و بی‌نظمی میکرد. دوزا همیشه در استراب و نگرانی بودند که مبادا به خاطر کارهای زشتشون مجازات بشن و دستگیر بشن و به زندان برن. تینار رام، خانه کوچک زیبا در کنار شهر داشت و باغ بزرگ و با صفایی رو جلوی خونش درست کرده بود. در انتهای باغش چاهی عمیق بود که از اون آب رو بالا میکشید و درختها و گل باغش رو آبیاری میکرد. و از شکوفه‌ها ها و گل های رنگ و آواز پرنده هایی که لابلای شاخه های سبز درختا ها به این طرف و اون طرف میپریدن لذت میبرد روزها میگذشت و از باران خبری نبود آفتاب به شدت میتابید و به تدریج شادابی و سرسبزی باغ از بین میرفت و زمین به آرامی خشک میشد و از تشنگی ترک برمی داشت تینار رام با چهرهی غمگین و ناراحت به گلها و گیاهان رنگارنگش که پژمرده میشدن نگاه میکرد و با خودش گفت: آه خدای من، باقی من با تمامی گلها و درختاش داره نابود میشه. فاصله چاه تا اینجا خیلی دوره. من دیگه پیر شدم و قادر نیستم که آب رو تا اینجا بیارم. نمیدونم باید چکار کنم و چجوری آب رو به اینجا برسونم. من دیگه پیر و چاق شدم و توانایی دوره جوونیمون ندارم. او با این فکر در طول جاده قدم میزد و بعد از مدتی راه رفتن برای رفع خستگیش زیر سایه درختی نشست که یهو اسم خودش رو شنید و در چند قدمی خودش پشت تخت سنگی متوجه حرف زدن دو نفر درباره خودش شد تینارام در پشت درخت دیگه‌ای نزدیکی تخت سنگ پنهان شد. جوری که فقط اون میتونست اون دو نفر رو ببینه و اونها نمیدیدنش. یکی از اونها که بلنقد بود گفت: تینارام و همسرش شبها خیلی زود می‌خوابند. ما باید صبر کنیم و بعد از اینکه اونها خوابیدن، سوراخی رو روی دیوار ایجاد کنیم و از اون وارد باغ بشیم و در باغ رو باز کنیم و بعد به کمک هم همین که داشت میگفت مرد دوم که کتاخت بود گفت آیا واقعا تینار رام خیلی پول دار و ثروتمنده؟ اولی جواب داد اوه بله اون مرد ثروتمندی و شنیدم که جعبه پر از طلا و جواهر داره که در گوشه ای از خونش اونو مخفی کرده مرد دوم جواب داد خب با این توصیف مطمئن شدم که اون پولدار و ثروتمنده. باید خیلی زود به سراغ جعبی طلا و جواهرات اون بریم و با به دست آوردن اون خوشبخت بشیم. با شنیدن این گفتگوها تینا رام به خانه برگشت و ماجرا رو با همسرش در درمیون گذاشت و به همسرش گفت امشب خیلی زود باید شام بخوریم. تینارام سنگهای کوچیک و گردی رو به خونه آورد و طلا و جواهراتش رو در یک جبه دیگه گذاشت و زیر تخت خوابش مخفی کرد و به انتظار دزدان نشست و چشش به پنجره دوخت تینارام و همسرش نگاهشون به پنجره بود که همسرش متوجه دو مردی شد که بین درختها خودشون رو مخفی کرده بودند و اون رو به تینال نشون داد با مشاهده اون دوتا تینال به همسرش گفت چرا غذا رو حاضر نکردی؟ زود باش شام رو بیار من خیلی گرسنمه همسرش سفره رو پهن کرد و غذا رو آماده کرد و هر دو به خوردن غذا مشغول شدند دزد بلنقد گفت هنوز تینال نخوابیده نزدیکتر بریم تا ببینیم اونا چه کار میکنند دو دوست، یکی بلن قد و دیگری کوتاخ به خونه نزدیک شدند و زیر پنجره خودشون رو مخفی کردند. یکی از اون دوتا از پنجره به داخل اتاق سرک کشید و به اون یکی گفت اونا هنوز مشغول خوردن غذا هستند تینارام که نزدیک شدن دوست ها و محل مخفی شدنشون رو زیر پنجره متوجه شد به همسرش گفت چند روز پیش شنیدم که چند تا دوست تو این حوالی به سرقت پرداختن و تلا و جواهرات دوستم علی رو بردن اونها ممکنه سراغ ما هم بیان باید طلا و جواهرات خودمون رو در جای مطمئنی مخفی کنیم پس همسرم جعبه تلا و جواهرات منو بیار هنگامی که او جعبه رو آورد تینال سنگها را به او نشان داد و آهسته گفت این سنگ ها و جواهرات ما هستند. سپس با صدایی بلند طوری که دزدا بشنوند به همسرش گفت طلاها رو بیار تا در جعبه بگذارم. زن سنگ ها رو به تینان داد و اون با دقت اونها رو در جعبه کنار هم قرار داد. دوباره تینال گفت خب حالا جواهرات من رو بیار. دوباره همسر سنگها رو به اون داد و تینال این بار هم اونها رو با دقت کنار سنگهای دیگه گذاشت و با صدای بلند گفت من این جعبه رو جایی پنهان می که دوزا نتونن اونو پیدا کنن هرگز فکر نمی کردم که ثروت من اینقدر زیاد باشه جعبه پر شده بیا به من کمک کن تا در اونو ببندم بعد از اینکه در جعبه رو بستند، تینال و همسرش از خونه بیرون رفتن و به سمت انتهای با خرکت کردن. وقتی که نزدیک چاه عمیقشون شدن، وایستادن و تینال جعبه رو توی چاه انداخت طوری که صدای حاصل از برخورد جعبه و آب ته چاه شنیده شد. بعد به خونهشون برگشتن و چراغ رو خاموش کردن و منتظر اکس و لمل بعد از لحظه ای دوزه که از خوابیدن زن و شوهر مطمئن شده بودن شروع کردند با همدیگه حرف زدن و همدیگه گفتن که باید صبر کنیم تا خواب اون دوتا عمیق بشه بعد به طرف چاه بریم و جعبه رو بیرون بیاریم و خوشبخت بشیم با شنیدن صدای پاهای اون دوتا تینال به سمت پنجره رفت و اونها رو نگاه کرد که به سمت چاه می رفتن. و با خودشون می که ما باید آب چاه رو بیرون بکشیم و بعد بریم درون چاه و جعبه رو بالا بیاریم. آن دو خیلی زود و با سرعت شروع به کار کردن. آب رو از چاه بالا می و کنار درختا میریختند. چاه آب زیادی داشت و اونها برای به دست آوردن جعبه مجبور بودند که کل آب چاه رو خالی کنند. اونها تمام شب رو کشیدن آب از چاه سپری کردند. و نزدیک صبح که شد دست از کار کشیدن. با این وجود هنوز آب چاه خالی نشده بود. تینال پنجره اتاقشو باز کرد و به اونها گفت: دوستای من از اینکه باغ من آبیاری کردین و مانع پژمردگی و از بین رفتن گلا و درختای من شدید، بسیار ممنونم. جعبه که توی چاه انداختم پر از سنگ بود و به ماموران هم اطلاع دادم که شما اینجا هستی. و به زودی اونها برای دستگیری شما به خونه من میان. <تصفح> بازم از اینکه باغ مرا یاری کردید از شما ممنونم.